دارم امید آتفتی از جناب دوست کردم جنایتی و امیدم به افوه اوست دانم که بگذرد ز سر جرم من که او گرچه پریوشه است ولی که این فرشته خوست چندان گریستیم که هر کس که برگذشت در عشق ما چودی روان گفت که این چه جوست هیچ هست آن دهان و نبینم از اونشان موی است آن میان و ندانم که آن چه موست دارم عجب ز نقش خیالش که چون نرفت از دیدم که دم به دمش کار شست و شوب. بی گفت و گوی تو دل را همی کشد با زلف دلکش تو کرا روی گفت و عمر است تاز زلف تو بویی شنیدم زان بوی در مشام دل من هنوز بوست حافظ بد است حال پریشان تو ولی بر بوی زلف یار پریشانیت نکوز